خب اصلا زمان خیلی خوب بود یه زمانی میواه و مرده داشته شد انا فکر نگه ایچ میواه ای مرده داشته باشه مرده ایش پا مرده داره سیانه ماهی نیست <تصفيق> <تصفيق> استانه خورداره 1394 اپیزود سوم از فصل یکم رادیو 18 بناش. کوبا ام آمریکا. سیگار روشن کنار قهوه برزیلت دنبالت گشتم آدم به آدم قیابنا رو یه تاکسی زن اومد و بردت برای آخرین بار نگاهت کنم و این آهش به خواب رفتن از را دوست بدارم. آفتابی ملایم بالای سرت بگیرم و بادی به با اندازه. آسمانت را نباخنده های گاه و بیگاه و ناپایدار ابرها که با بازی دو گنجشک سرگرم کنم. بگذار بنویسم مهم نیست خیلیها تو را نشناختند یا خیلیها تو را دوست نداشتند یا خیلیها همانطور که به استقبالت نیامدند رفتنت را هم ندیدند مهم این است که یک نفر تو را بشناسد و تا ابد کنارت بماند می تنم را خشته کنم. نه از خانه تکانی و شستن شیشه و دیوار از نشستن و خیر نگاه کردن به تو. خیره شوم به بغزی که در گلویت داری که با برک های جوان و همچنان سبزت بی آنکه خودت شاهد شکوفه هایت باشی به خواب می روی. دلم میخواهد این بار با تو در آگوش تو به خواب رویم. من و تو بهار. من تو وقت زیادی نداریم. بیا یک دیگر را در آغوش بگیریم. آرزو کنیم این بار که بر می خیزیم شاخه های من شکوف داده باشد. آرزو کنیم این بار که برمیخیزیم کسی به اشتقبال ما نامده باشد چشمایت را ببند نترس بیا در آقوم شتابشتان بخوابیم و فقط آرزو کنیم سفست داشت بهار پاییز زمستان به فصل دیگری هم احتیاجی نبود بهار درخت ها هایشان سبز میشد. شد بهار که تمام میشد فردایش پاییز بود بی مقدمه و ناگاه خیابان و کوچه ها از برگ پوشیده میشد. و زمستان درختها ها به خواب می رفت هیچ کسی از خودش نمی پرسید چرا برگها ها ناگه ها می ریزند هیچ کس هم ریختن برگها ها را ندیده بود فقط یک روز صبح وقتی بیدار میشدند میدیدند خیابانها پوشیده شده از برگ کسی نمیدانست چه اتفاقی برایشان افتاده هیچکس هم سوال نمیکرد غزل و تورج زندگیشان را ساده شروع کردند با یک یخچال اجاق گاز دوتا موب یک تلویزیون ساده یک میز غذاخوری دو نفره و یک گلدان جوان به مرور رفتو آمدشان به محل کار بگونه ای شد که معمولا هم را کمتر پس برای هم یادداشت می‌گذاشتن و خانه را ترک می غزل یادداشتی می نوشت و می روی در یخچال. غزا توی اخچاله هرچقدرشو خوردی برداشو بذار توی یخچال. تورج یادداشتی نوشت و چسبان روی اجاق باز رفتی سر کار برگشتنی کت منو از خشکشویی بیار غزل کنار تلویزیون قربسارو چسبان یادت نره اینا رو پرداخت کنی اختار خورده تورج یاد روی در اتاق خواب نوشت لباسای منو که یادت رفته بیاری غزل بر یاد روی مبل نوشت تو که باز خبزا رو پرداخت نکردی تورج روی مبل کناری نوشت غذا چیزی داخل یخچال نبود که غزل روی میز دو نفرشان نوشت گاز و قطع کرده بودن با چی میپختم تورج روی در حال نوشت تو چرا نگفتی مامانم زنگ زده قزل روی در خانه نوشت. دااف تو تورج, تورج یادداشت غذر را خواند و به نهالی که با هم خریده بودن خیره شد تا آن روز کسی ندیده بود چرا برگ ها می ریزند؟ تا آن روز کسی تابستان را ندیده همچین واجهی اصلا نبود اما آن روز سال چهار فصل گرفتش و تابستان شد فصل آب دادن به گلدان فصلی که باید کنار گلدان یادداشت گذاشت دوستت دارم. der applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie bleibt Jeder redet auf dich ein Trotzdem bist du so allein Und du siehst so traurig aus Komm in mein Arm, lass es raus Glaub mir ich war wo du bist und weißt was es mit dir macht Doch wenn du last kann ich es sehen Ich sehe, mit all deinen Farben. هر کسی رجی شد میکنی برداشت مرون درنگ درنگون به شد هم شوی دور پرک درنگ ندارد شتا پون مثل بزرگن؟ کدوم تابستون کدوم بچه ها کدوم چند تا پرنده اون همه هیاهون اون همه قیل و قال کوچه کوچه با باز بود هر میخواسته بری باز از اون کوچه رد میشدی رفت اومد آدما. هر کسی رد میشد نون برداشتن ها زنا در بوش هم پش پش کردن ها مردا به درخت آب دادن ها پسرا خوندم آقا توپ بازیاشون هاشون. دخترا باد بادک هوا کردن ها لیلی کردن هاشون. ظهرام که میشد خورشید میشه تو قفصل لا شمدونی کنار عکس رفته آممون. بزرگها میخواابیدن. بچه های واوشکی تو رویاهاشون اسرام که میشد پسرا چشم بستناشون هاشون. دخترا قایم شدن ها. چشم میبستیم قایم میشدن شدن چشم میبستن دل میدادین. دختره رو یادته. همونی که به شب خرد و دیگه بر نگشت همون روزی که سنگشو سر داد خونه آخر خونه اول جوست خونه دوم جوست مامانش از ته کوچه صدا زد اسمشو باید گرفت تو پر دومنش چه شسلیاش از زیر موهای ریخته رو صورتش پیدا شد چه شامو بستم رد شد از کنارم رب ته کوچه استامو موش کردم رفتم نفسمو دادم تو گفتم نرو نرو نرو درنگ کن درنگ کن به شب میخوری دور فلک درنگ ندارد شتاب کن واسه بزرگاست بابا بچه این هنوز درنگ کن که دلم با تو هم سفر شود اما کجا جون نشته صدا بچه ها باباش گفت یعنی کجا میتونه رفته باشه از اون روز به بعد دیگه هیچ چی یادم نیست. ماهی که از کنارم گذشته دیگه هیچ بر تو آسم اونا ندیدم. کدوم سال بود خدا رو خاموش کرد؟ کدوم سال بود باد بادکار و باد برد؟ چرا باس برگردیم به اون کوچه ها؟ تا قبل اون روز بچگی ها تا به سنا رو پشت بوما ما پلاف بیرون بودن رو که نگاه می کردیم ما دل مشغولمون نمیکرد ابراد دل مشغولمون نمیکرد آخ ما آخ ما شماها که هنوز میونه ماهایین شماها که هنوز میونه ماهایین بعد اون روز شبا تو کوچه رفتنا صدا زدنا ناله کردنا جیغ کشیدنا پیش گشتنا دست خالی برگشتنا حتما اگه ماه بالا کوچه باشه لابد کسی تو کوچه است؟ بابا پشت درخت ها کسی است؟ پس اونایی که رفتن پی باد باد ها چی؟ اونایی که دیگه برنگشتن چی؟ گفتم خسرو کیا تو چه موندن ستاره ها رو بشمرند خسرو گفت جنازه ها فقط جنازه ها آخ مامان آخ مامان مامان فقط توی کس گریه کردن سر قبر بچت سیر نمیشی فقط توی هنوزم دارم نشونیشه از مرده ها میگیرن میتونم بگم اونجا میتونم بگم اسی که از سایت خالصتون بولن نه. آدم نمیدونه میدانیش کجا قایم کنه. تو یکیش میزنی بیرون تو یکیش عاشق میشین، تو یکیش ایه. اگه شانس بیاری میمیری، اگه شانس نیمی چیکار باید. خوش که برنامتون راجع تابستون و ما تو اول فصل تابستون فکر میکنم هستیم و این قطعه که میخوام براتون بخونم راجع یه رومانیه که توی تابستون میزه نه فکر نکنید منظورم از این که توی تابستون مثلا سماه تابستون میداره بررسوم میکنه نه من و همکار اما غلام حسین دولت آبادی مشغول به پایان بردن یه رومانی هستیم به نام پول رمان پول توی یک روز میگذره و اون روز روز ۲۴ مرداد 1992 تاکیدی هم داشتیم که یک روز گرم تابستونی رو انتخاب کردیم برای که نشون بدیم که تو یک روز گرم تابستونی چه از وسط داستانی یعنی مثلا اون از ساعت 6 به بعد بارون میگیره بارون ناوه هنگام تابستونی اسمی بارون رو گذاشتیم چه اتفاقاتی توی این شهر میتونه بیفتی؟ این شهری که حافظه شده در دست میده این شهری که آدماش دارن فراموشکار میشن. هرچه فراموشکار شده بدی نیست. بدتر از اون اینه که آدماش دیگه آدم نیستن. در از انسانیت دور شدن. یعنی اگه یکی بپره تو تمای رمانتیک میگم تمش از دست رفتن انسانیت حالا چه موقعیتی شاید تو یه روز گرم تابستون. ولی دلیل نمیشه که اون روز پاییز هم بود انسانیت از دست دارد. رمان رمان بزرگیه بزرگ از نظر حجم دارم میگم و توش پر از داستان‌های مختلفه این داستانی که امروز می‌خوایم با هم گوش بدیم کامل نیست کاملشو نمیرسم براتون بخونم ولی یک بخشیه از یکی از فصل‌ها اگه خیلی دقیق‌تر بخوام بگم یک جزئی از یک کل سرسششون غریب با ایرامی از ساعت سه نیمه شب که اس واریز مبلغ 400 میلیون ریال به حساب بانک پاسارگادش رسید. و صدای دینگینگ اس ام اس اصغاب پرانده دیگر چک دیگه هم نداشته. منتظر بود زودتر ساعت 7:3 میشود تا پول ریالو چک بنادیش. پس برای محفوظات در محله 400 دستگاه پیروزی خودش رو برای ساعت 8 نیم درسانات باغ کالا رترمینیش بلوار فرخسابی تا بیوک بایرامی را بعد از دقیقا یک سال و نیم ببینید و بپرسد ماجرای اونشون چیز که باید شب عروسی از طرف اون به حسابش واحیز بیوک اگر شب برنامه عروسی داشت ساعت هشتونی یک به نو خانه پرش نه صبح در دفتر بابتالا پشت میز مدیریتش نشسته بود و چک ها و فاکتور ها و رسید های عروسی را کنترل میکرد و اگر حال و حسرش میکشید سرزده می میره بالا سر کارمند ها و کارگرها و با دقت نظارت کند تا همه چیز مطابق برنامه‌ریزی شود. فریب ماشینش را جلوی در سر رنگ و بزرگ بزرگ آهنی باخت و زیر سایه یک از چنارپای سن سالدار مشکل مشجرد پارک کرد. از جعبه سب رنگ آدامس نعنایی ریلکس را در آورد و دو سه خالی کرد، کف دستش و به دهان انداخت و شروع کرد. دسگیره سندلیش را بالا کشید و با پشتی صندلی عقب سرش را روی بالشتک سندلی گذاشته. و اینکه آفتابیش را کشید بالای پیشونه چشم. صورتش کوره بود. منتظر بود تا کی لکسوس سفید رنگ توکرم بیوک از خیابان پایینی به پیچه جلوی در تالار و با بو بوگی در به رویش باز شود آن وقت بود که میتوانست برود سرابش. بیوک پارسا دقیقا تو همین روز بود. روز 24 و آمده بود که دفترخانه شماره 72 حفظ نارمک و بی سلام و علیکی امضای انداخته بود پای ازدواج فریبا و میلاد وکیلی و بی خدافزی رفته بود یک سال یک سال یک سالی می شد که فریبا و برودی را نپیچیده بود تو میدان شهرک قرد پس تو این مدت شهرک را نه تا میدان کاج کوچه اول پلاک ده رفته بود و نه تا انتهای بلوار فرحصادی و باختا تمام طول راه را در شیشو بش بود که برود پول را به حساب و بیوک برگردند و اصلا به روی خودش نیا که چنین پولی رفته به حسابش و بیرون آمده سرکوچه تالار که رسیده بود پاسوس کرده بود نیم دوری زده بود که برگردد ولی فرمان در دستش پروش می دستش نترازده بود. صدای زنگ خفه گوشی موبایل آیفون 4Sش از تو گوشی گوشی رو از کیف بیرون آورد. نسیم بود. زنگ زده بود ببیند تا چند دقیقه دیگر میرسد سیمیتری نارمک، کوچه رجب بلوکات، خانهشان پیشش تا لباس عروسی را پروفه نهایی کند. و فریبا تازه یادش آمده بود امروز نه صبح با نسیم قرار داشته. رفته کفشش را عوض کند. چیزی نبود. پاش را میزده و نمیرسد برای پرو نهایی برود پیش نسیم. لطف کند لباس و تاج عروس را پی کند خانه عموی مصطفی آنجا میلاد هست و آن را تحویل می سر سرگردان دو به صندلی عقب نگاه کرد جوبه سفید رنگ کفش عروسی که دیشب با محبوب و کوچو بلن خریده بودند همانطوری دست نخورده مونده بود صدای بو ماشین بیوک فریبا را به جلو هل سر سرگردان دو ماشین بلوک را دید که وارد ماشین روی حیات باختانر شد نمی رسید برود پیش نسیم باید حتما با پک برایش بفرستم. اگر هم لباس مشکلی داشت، خود نسیم دو سه ساعت قبل از طلوعی میتونه استراستونیستش کنه. همین چیزی نشده. باید بره و اون با نوک سوئیچ ماشین به در آهنی ورودی مهمان باغتالا چند ضربه بزنه. تقی دروازه. نگهبان باغتالا چند ضربه به شیشه اتاق زد تا فریبا که همینطوری داشت برای خودش به طرف دفتر مدیریت باغتالا می رفت، متوجه او شد. فریبا به اون نگاه کرد. نگهبان با دست اشاره کرد که کجا دارد می رو خریبا اینکه را بالا دیشید و دست بکرد زد. نگهبان از داخل همان اتاقه که نگهبانیش یک دست رو سینه گذاشت و تظیم کرد و با دست دیگرش اشاره کرد که بفرمایید از شش پلهی که راه ماشین رو را از راه مهمان ها جدا می کرد بالا رفت گذاشت رو فرش قرمز عروس داماد که می رفت و میگذشت از روستر ردیف پله پایی مرمر با چراغ های توکار زرد رنگ تا می رسید دم ورودی سالن عروسی. هنوز چند قلم نرفته صدای خانم خانم دختر جوان سیاه پوشی که دوستسری قرمز رنگ فرم باختان با رو سر کرده بود نگهش داشت که از رو فرش قرمز که برای مراسم باید تمیز به داشته می شد رد نشود. دختر جوان داشت با پسر سیاه پوش که پاپیون قرمز فرم باختالار زده بود از کارتون بزرگی شمهایی از پیش گذاشته شده در جاشمی های ای را در می و به فاصلهی هیچ از هم می فرش قرمز دو پسر جوان با همون لباس فرم باختالار گلدان های پای بلند سفید رنگ گل روز را هنهن هن کنان خرکش می کردند و می آوردن کنار فرش به, دو به فاصله دو متر دو متر کنار هم صف می کردن. فریباب به اتمام به خانم خانم دختر فرش قرمز را از زیر پا رد کرد تا بالای آخرین ردیف پله ها مردانه بالا رفت و از آنجا پیچی دست راست به راهروی که انتهایش دفتر مدیریت باغتلال می دو دختر جوان خونچه های عقد را به اتاق عقد بردند صدایی که شنیدید صدای جناب آراز بارسقیان نویسنده و مترجم در حوزه ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی بود او رمان های یک شنبه و دوشنبه و همچنین بیش از پانزده کتاب ترجمه را در کارنامه خود دارد که اکثر آنها نمایشنامه های مشهور جهان است <تصفيق>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 My Summer Wine. Strawberries, cherries and an angel's in spring. My Summer Wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you. Oh, فصل اتفاقی که برای کماده لباس میافته با پاییزی که ابراش نریختن و چتراب و شال گردنا به کارمون نیومدن با اون پاییز اطرای تلخ که نمیدونستیم تنهایی منتخصیریکی که بعدش هر وقت میشنیدیم پاییز سکوت میکردیم کنار پنجره یا با زمستونی که برث نداشت و پا لباس باز زخیما رو باز نکردیم و جای دو نفر قدم زدنامون رو کسی ندید و بعدش هر وقت میشیدیم زمستون، سکوت میکردیم کنار پنجره یا با بهاری که درختاش سوختن و لباس ایدیامون از قصدر در آوردیم و از کنار هیچ شکو رد نشدیم و بعدش هر وقت کسی میگفت بهار میکردیم کنار پنجره با همه اینا کنار اومدیم حالا فقط مونده تابستون حتی اگه تابستون رو دوست نداشته باشیم چاره ای نداریم فقط تابستون مونده پاش این فیلم رو عوض کن. این فیلم سکوت کنار پنجره. فقط تابستون مونده خیالمون رو راحت کنه زمین باهامون قهر نکرده. فقط تابستون مونده واسه باز کردن کمد لباس. تابستون فصل آستین کوتاه لباسای نازک. تابستون فصل عصرای خونک نشونی ما کنار پنجره. فردا صبح توبی داره. strawberries, cherries and an angel's kissing spring My summer wine is really made صنحت قرارداد 1394 اپیزود سوم از فصل یک رادیو 18 بنفش تم حساما دارم به جای تموم می‌ذارید اینا که زوری اینا که رژیم نمیشه از یابنده تقاضا می‌شهد آن را به پلاتو بازیگا تحویل دهد چی <تصفيق> زیاد داریم اتفاقا پشت سر استفاده نمی‌کرید زیاد داریم دوستان قدیمی من بگم اول زوری اینا که در زوری اینا که صحبت کنه چه جنون باوی هست حالا بگم که من که داشتم می‌اومدم پلاتو بازیگا یه رادیای سطه در خودشون گفتن ها. اه، اینجا ضبط کنیم عینک هم و تو ماشین جا گذاشتم یه دیوی سییورایی یورایی یه دیوی سیورو قیمتش بود حالا استفاده کردیم دیگه 100 یورو میشه دیگه اون چه بوددارره رادیومونه من دیدم